بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد من درس الساس درس هي كدر سوري يوسف ويأي نوه فرمودي الله جل شأنه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجوابكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فردران يوسف عليه السلام جمعشان. بدون شک اونها پیامبر نبودن چون اگر پیامبر بودند هیچگاه قصد قتل برادرشون اون برادر نوجوانشون که هنوز بزرگ نشده نوجوان بی گناه جرمی هم مرتکب نشده این چنین قصتی را نمی‌کردند یک بچه‌ای که بی چرا بیان بکشنش چه کار کرده مگه اون بچه مشکلشون با کی بود برادران یوسف مشکلشون با پدرشون بود چه مشکلی با پدرشون داشته؟ مشکلشون با پدرشون این بود که قلبن یوسف را بیشتر دوست داشت چرا یوسف را بیشتر دوست داشت؟ چون یوسف صالح بود، اهل دین بود، متقی بود علامات سلاح و خوبی درش بود، نیکی درش بود غیر از این که الله محبت یوسف را در قلب پدرش کاشته بود نه یعقوب مقصر و نه یوسف هر دوتا بی بی‌تقصیر بودن ولی که برادران یوسف حسادت ورزیدن. که چرا باید این گونه باشه مگر چی کرده یوسف چرا باید یوسف محبوبتر نزد پدرمون باشه شیطان اومد با توجه به انگیزه خودخواهی که در تک, ماها، تک تک ماها هست خودخواهی همونطور که یوسف مستحق محبت و توجه پدرمون هست ما هم مستحق توجه پدرمونیم چرا باید پدر ما توجه بیشتری محبت بیشتری به یوسف داشته باشه خودخواه بودن. براشون خیلی مهم بود توجه پدرشون آدمم سبب فریب خوردنش چی بود؟ خودخواهی بود. شیطان از در خودخواهی وارد شد. شیطان از در خودخواهی وارد شد. ای آدم تو اگر از این میوه بخوری جاودان میشی. هیچ وقت دیگه نمیمیری. الله گفته نخور تا اینکه جاویدان نشی. آدم دوست داره بیشتر اون بکنه، بیشتر زندگی بکنه. از این در وارد شد و اون میوه را خورد. شیطان اغواش کرد، فریبش داد. از در نصیحت وارد شد شیطان. شیطان همیشه از در نصیحت وارد میشه فکر نکنید که از در حقد و کینه و بغض وارد میشه نه از در خیرخواهی نگاه کن پدرت بهت بی توجه نگاه کن مادرت بهت بی توجهه نگاه کن برادرت فلانه این انگیزه این خودخواهی سبب حسادت میشه یعنی خودخواهی انسان خودپسندی انسان خودباوری انسان گاهی انسان به فکر خودش مینازه فکر میکنه چون مطالعه کرده چون تحصیل کرده چون مدرک داره دکترا گرفته از دیگران بهتر میفهمه این سبب میشه این انگیزه درش ایجاد میکنه که حسادت بورزه به پایین دست خودش اینهایی که حسادت ورزیدن بچه نبودن بزرگ بودن مسن بودن ریششو سفید شده بود بچه نبودن حسادت از آدم بزرگم روح میده نه بزرگ بودن کلی حرفه و کار داشتن تنی و داشتن شغل و درآمد داشتن ولی یوسف بچه بود چیزی نداشت. پس اونهایی که دارا هستن چه از علم، چه از دانش، چه از توان جسمی، اون تکبرشون شاید بیشتر بشه نسبت اون کسی که نداره. غرورشون، کبرشون شیطان از اون در وارد میشه. چون داره اغواش میکنه. تو که این همه داری، پس چرا اون که نداره اینطوریه؟ تو که این همه پول و مال و ثروت و علم و دانش و فلان داری، اینقدر مریضی داری ولی اون کسی که فقیر مریض نیست، چرا اون مریض نیست؟ چرا اون نمیدن مشکل خانوادگی نداره من مشکل خانوادگی دارم. از هر در شید شیطان شاد وارد باشه و انسان باید زیرک باشه هوشیار باشه. اقتلو یوسف او اطرحوه طرح و مسئله قعدده فی هست میگن خف ضرره. جای انسان دوتا کار اشتباهی هست. یکیشون باید انجام بده. اون که فسادش اندکر انجام میده ولی این جا نیست. اینجا این قاع اشتباه بود. ما انخف ضرارینداری انگشتمون هست. زخمی شده. میتونیم بریم بخیه بزنیم و میتونیم هم قهتش بکنیم زخم شده کدوم یک بهتره بخیه زدن درد بخیه را تحمل کردن و سوزن زدن بهتره از این که قهر بشه یک عضو رو از بین ببری این اخف را نه جای انسان مجبور بشه ولی اینجا این قاعده را اینجا جای اشتباه گذاشتن گفتن بکوشیم یا یوتعیدش بکنه یک جایی بفرستیم که دیگه پدر چون مهم این بود که پدرمون مال خودمون باشه الان پدرمون مال یوسفه کل توجه پدر مال یوسفه فکر نکنید اینجا یعقوب که پیامبر الله تبعیض قائل میشد در امور ظاهری نه نه بحثشون امور فقط باطنی و قلبی بود چون گفتن در آیه قبلی الله میگه اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى محبوب محبوبتان بحث محبتشون بود بحث عدالت نبود بحث تبعیض در امور ظاهری نبود ما مجبور این وظیفه داریم چه میان همسران چه میان فرزندان عدالت بکنیم و تبییس قائل نشیم صحابی میاد نظر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که گواه باشه رسول الله که این علاغ به این فرزندم دادم گفت که بقیه دادی گفت نه گفت که من گواه بر زور نمیشم در امور ظاهری ما باید وظیفه داریم که عدالت بکنیم ولی در امور قلبی دیگه دست خود انسان نیست همسران رسول گلهای داشتن که چرا رسول الله صلی الله علیه و آله را به گفتن گفتن تا اینکه آخر دخترشو فرستاد فاطمه گفتن تو برو به رسول الله صلی الله علیه و آله میگم چرا عایشه را به شاهد رسول الله صلی الله به فاطمه ای فاطمه من عایشه دو دوست دارم تو هم با دوستش داشته باشی محبت چیزی قلبیه خصوصا محبت نسبت به اهل دین و علم و ایمان که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید الله اذا حب عبد نه جبريل اگر الله بنده رو دوست داشته باشه جبرئیل صدا میزنه ای جبرئیل فلان رو دوست دارم او رو دوست داشته باش جبرئیل هم صدا میزنه به اله اسمانم من, من فلان رو دوست دارم او رو دوست داشته باش الله او رو دوست شما هم دوست داشته باش سپس میگوید اساس اساس محبت اون فرد به خاطر محبت الله در دل بنی بشر بنی آدم انسان ها کاشته میشه محبت روزیه الله میکاره در قلب کسی که بخواد چطور کسب بکنیم چطور به دست میاد این محبت رسول الله صلی الله علیه و میفرماین در حدیث قدسی که از الله نقل میکنه که میگوید يا زين و عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه بندهم چنان با خوبی ها و نیکی ها به من نزدیک میشه تا این که او رو دوست داشته باشن با نیکی با فعل خیر خوبی و احسان در حق دیگران سب ان الله تو رو دوست داشته باشه راهش خیلی آسونه این راهی که یوسف در پیش بود ولی آنها چشمشون از این بصه بود نمیدیدن یا این که تبعیدش بکنید به یک جای دوری یخلو لكم وجوابی کم تا اینکه پدرتون مال خودتون باشه یعنی چهره پدرتون صورت پدرتون فقط مال خودتون باشه فقط پدرتون شما رو ببینه جلوه چشش باشید و تکونو من بعدی قوما صالحین. الله اکبر قصد گناه رو میکنن ولی قبل از انجام گناه توبه کردن قصد توبه رو دارن هنوز گناه را قصد کردن، گناه را انجام ندادن. میگن گناه را انجام بدین ولی قبل از این گناه آدمای خوبی باشیم و صالح باشیم و تکون من بعدی قوم صالحین. گناه را انجام بدید، توبه هم بکنید و صالح بشید. یعنی قبل از ارتکاب جرم قصد توبه را هم دارن که بعد از اون صالح بشن. دیگه, دیگه این کار را انجام ندن. همین یک بار این کار را انجام بدن، این قتل را انجام بدن، دیگه این مسئله تکرار نشه. اتکونن من بعد قوم صالح هیچ وقت فساد مبرر کار خیر نیست یعنی چی یک مسئله قاعده کلی الغایه لا هیچ وقت هدفی که برای خودمون در هر چقدر خوب باشه هدفمون خوبه نمیتونیم برای رسیدن به اون هدف از وسیله اشتباه استفاده بکنیم الله را دوست همه من الله را دوست داریم یه شخصی بیاد بگه من مشروب مینوشم تا به الله نزدیک بشم میتونه نه یه شخصی بیاد بگه من zina میکنم، یه غیبت میکنم. قسم خوبیه، قسم صلاح. هیچ وقت وسیله غیر مشروع وسیله نیست برای رسیدن به رضای الهی، وسیله برای رسیدن به اون هدف. چون هدف درسته، دلیل بر این نیست که تو از وسیله غیر مشروع استفاده بکنی برای رسیدن به اون هدفت. خیلی ما مثال داریم. در شریعت برای اینکه فلان تاجر زکات مالش رو بده، برای اینکه کمک با مسنندان بکنه، وقتی که از من سوال میپرسه میگه حکم آهنگ و موسیقی چیه من میگم نه مشکل نیست الا گوش بده چرا چون میخوام دلشو به دست بیارم اگر من بهش بگم که حرامه از من زده میشه دیگه کمک به فقرا نمیکنه کمک مسلمانان نمیکنه نه اجازه نداری چون قصدت خیره که اون تاجر بیاد زکاتشو بده به فقرا کمک بکنه نمیتونی روی شریعت در پوش بذاری کتمان بکنی از دین و دیانت و شریعت الهی نه اجازه نداری من اجازه ندارم به خاطر رضای مردم مرتکب حرام بشم کاری که خلاف رضای الهی انجام بدم اجازه ندارم در شریعت هیچ وقت ما اجازه نداریم چون قصدمون نیکه بچمون اشتباه میکنه به قصد اینکه آقا تربیت بشه کوتکش بزنیم سیلی میزنیم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید اجازه ندارید زیر گوش کسی بزنید سیلی بزنید حرامه چه بزرگش چه کوچیکش شلح گذاشته شده ان الله گذاشته شده برای کسی که اشتباه میکنه ولی زیر گوش زدن حرامه حتی برای اون دوز اون قاتل اجازه نداری قاتله قصاصه سارق دستش قطع میشه اما زیر گوشش اجازه نداری چرا ما دیگه مثل بنی اسرائیل نباشی قالو سمعنا وعصينا نگیم چه نمیدیم قبول نکردیم نه این شریعت الهیه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته کلامش حقه هنا قائلا منهم لا تقتلوا يوسف ولقوه في غيابه الجب یکی از اونها یکی از رشید بود صالح بود بهتر از بقیه بود برادر بزرگترشون اومد گفت که به جای اینکه بکشید یوسف را در اون چاه بندازید اون چاهی که قافله از کنارش رد میشه یلتقطوا بعضو سیاره هایی که از اونجا عبور میکنن اونو بردارن نگاه کن کشتن الان دیگه فراموش کرد اول خشگی نراحت بودن ناراحت بودن چیزی تسلیم گرفتن آروم که شدن گفتن خب حالا اشکال نداره نمیکوشیم چون مهم اینه که پدرم ما مال خودمون ما باشه بندازیمش توی چاه ولی این هرچته یه چاهی چا که نجات پیدا بکنه یه چاهی که قافله از کنارش رد بشه چون معمولا قافله ها برای خودشون در نظر میگیرن کجا آب باشه کجا آب نباشه وسیله است نمیشه از سرش رو پایین بندازه بگیم نه الله الله بخواد آب میرسونه نه آدم با توشه رو با خودش برداره این توکله اگر ما بدون توشه بریم از توکل اینه که اسباب را بگیریم راه را دقیق بریم با راههنما بریم کسی که راه بلده راهی که درش آب آذوقه داشته باشیم که نمیریم یالتق و بعض و سیار اینکنتون اگر میخواد این کارو بکنید اگر می برادرتون رو از چش پدرتون دور بکنید بهترین کار اینه که او را در اون چاه بیاندازید که اون قافله اون را برداره و ببره به سرزمین دیگر که اش پدرتون دور باشه صلی الله علی محمد و آله محمد